شب یادتون نره دا همه فامیل جمعن از دوستان فقط شما رو گفتم که همزبونه شفتین این نظری لطف دونست خوب چه چه ساعتی وارد میشه 4 بعد از چشمه همگی روشن دل‌مون روشن سلام دکتر سلام صبحتم بخیر اینو بدین دست دکتر من شنیدم که دولت براش دعوتم فرستاده جعفر برام نوشته بود اما من راضی نیستم نوکر دیورا داره وقتی کسی میتوند برای خودش کار کنه چرا برای سربار دولت میشه دو هزار جوور هم منند وکه جایگاه دکتر دستم بدون منتون این مریض ما دی شب تو صبح نخواابید است جایی و خیاز لش کرد خب شبیه اولی عمل معمولا همینطور الان می اون یه نگاهی میکنم خدا عممرتون خ میفر راستش اول که جفر فرستادم فرنگ گفتم این بره و دکتر بشه و بیاد یه درمانگا برای مردم میکاره اوت کنه بعد که نوشت کشاورزی خونده اون ملک رو خریدم و اسمشو گذاشتم جعفر آباد که بیاد آبادش کنه سلام دکتر سلام ننیکنم حالا درسته که بره باست دولت کار کنن؟ نه حق با شما سلام آی دکتر سلام جانم باید چطوره؟ ای به مرحومت شما اگه میشه به جعفر سفارش کنین که حواسش په کار دولتی نره یه سر و یه بالین بچستود به ملک جعفر آباد و اونجا رو آبادش کنه. یه مش آدم مستحق و حیال بارمون دورو بران بذاردشون سر کار دو گوش بشن سواب بره بروی چشم هر کاری که از دستم بر بیاد کتاهین نیمی کنم مثلا. خدا از آقایی کمه نکنه بفرمید رویدو جون عدی شب یه خود سرم گیز میده فکر میکنم که بعدم فشارم جستس بالا شما تو بیشین؟ من مریضامو که دیدم میام فشار دونه هم نه نه دکتر جون جوندیرم میشه باید دارم به کارم میسم شب هنچی دو تر این جعفر افر خوشحال در میشه سعی میکنم اما صد درصد بدون قول نمیدم چون اختیار ما دکتر زماعت دست مریضاموست نمیشه اومشه باید مریضات مرخصی بگیری؟ حالا تا شب این شب ولی سو مندازهره دونه ببرم کنی ببرم شهر از خواه؟ جونم از این معلیسی تریش نداریم؟ خیار یه دستر از این تو بازار نیم یه لوده خیارو یه صندوق انگولو بیدونه بو دو جعبستی با یه مقداری هم هندونه خربازه بفرست بردخونه بروی چش همچین باشه که برستم واسه شب تو زرفا بیچینم باشه بازی نزام بازی نزام بازی نزام چی بذارم؟ عازیمه از اون دو تایی قراوتی بزن. ای بچا. یه دو جا به بزن که رد نشه دا. ای بچا. جذبم بزن. از اون قسمت داراشو جعفر خیلی دوسره. از اون درجه کا باشه دا. انشاءالله چون چارو سیشو میچینم. انشاءالله. <تصفح> میخوام نذارم به یما بکشه. دستشو میذارم تو دست دختر آمو بش. سیشوی باشه نوشم. ده برابر بیشتر از دمودی خود آدم کیف تره. شب یادت نره. میگم ما کاری داشتیم بفرسید تا بره بچارو بفرسن بیان خدمتتون. بچه ها با خانوم باجی یک تو تا دیگه هستن، کمکشو میکنن گلوشتون برو اون بر بازی کن که خاک نخوری خب این گسپندم خاک بخوره جالا سلام هج آقا سلام یه خورده آب به پاچی خاک همان هشت <تصفيق> سلام سلام خوشگل هم اومده عجم یادش دکتر هم ببه تو بقیل من الهی چون؟ دکتر جفر قدم میاره که میاره؟ ماشین کوچی هم میاره همه چی میاره بسه گرنت خودم و دکتر خودم و خوشگل خودم دکتر خوشگل هم من دکتر باهوش هم من گرنوش خانم ناز میکنه؟ دهنش آسم برم میکنه؟ باید میکنه سلام. خانم. سلام. افن، زرفا رو نایی بردن؟ هنوز نه افن کچه هموندن لنگ زورست؟ حالا کتا زور آقا جون یا يا الله بولم بولم بولم بولم بولم سلام نبایی سلام. سلام بزاشتون کنجه حوض؟ چشش نشنیان موازه بگم بزه این طرف، بزه این طرف آه اون هم بزه اون طرف بزه اون طرف، بزه اون طرف، بزه این گرفتون از روزه بریم، تو باقیش وقتایم تو خواه کاره نریز، تو باق گفتم انا مشکل نم. گونه گونه گونه من دکتر مشکل نم. نه نه مشکلش. گونه گونه گونه آخ يا حال. ان شاء الله مجلس بعدی مال تو و جعفر است. دکتر مشکل. چون باید یه دستمال به ظرفا بکشی. اگه یه آب روشون بگیریم بهتره. دکتر مشکل من دکتر. کار چنگیلا می بکنی نیوردی؟ شاید همونجا مچه کافیشی نیست؟ آها آه خانم چه و خانم چه. افا بوش میذارم مکرر تابیل بذاریم. کشم با چو. همچون توپ بلوپا. لومبی بلوپا، بمب بلوپا، بمب. هرچی کمی تحسد داریم بگی نه، ندیم با. بر عضو. باشه آقا ممنون. بهم میگم. افا اون لباسیات هم عوض کن. برای عشق که میخوام بیام فرودگاه عوض نکنه. آها اگه تو بیای، اون وقت جعفر تو راگ مواداریش میگیرد. من تنها برندایتریس. چینم دینم چینم چینم تو همو لباطت عوض کن یا آبی به سر صورتت بزن چشخونامو خانم سر خودو ببر پشت دستیاو می بخوری یال به تو اتاو سواری گل می‌چید فداش میگم الهای گل می‌فرمم الهای بده بده باند ما زحمت سو کن پیش پای شما رفت لنگه ذوره تینم جای اینکه قاتل نونو بشه قاتل یکی واسه دو کوماشه بایی با امیده <وضح> سلام حجاقم سلام با دیم اینکه کار این که کاره هم میشه گیشه مردم دو مهات دارم، نا سلاماتی ما هم دو ما داریم خردشم باز داریم وقتی من میزنم اش میگید گناه داریم میگاه کن؟ اسپیک دارید الان چه خانه شو ردیف کنید؟ سلام از آقا، سلام خانده ایدو دارید خانده ایدو ترافیک؟ ترافیک رفتی دارید آرزو مونده بدن اما یه روزی سری موقع بیای دارید بود دا آقا دختری خودتون هر روز خواب میمونه و ناشتایی رو دیر میده من بی تخصیرم هرکی دیگه مثل دو دوماده اوستا بود تا سلات زور میگرفت و میکپی هرکی بگم جایی من دومادی استا بود چیزی به زنش نیمتونست بگه هرکی هم پدر زنش اوستا بود سماور بر زنش روشن میکرد نفهمیدم که اصلا نمیدونم تو چی چی خوردین از آقای ما دادی؟ که دختره مثل دست گلشو برداشت داد به توی مار مارموله؟ ما <تصفيق> از خودی از آقا بهتر میدونه؟ دو حاله گام نمیزه نمیزه نمیزه بایداره کنیم پره پاچه همو توبیه مثل سی گربه افتادن بشونه هم هایا کنیم تو اصلا قدمت به طایفه ما اومد نداشت باید اینقدر بزرمت تا هرچی خورده شیشه داری بستانت بریزید و پاک پاکیزه بشید باید جارو داره باید باید باید باید سلام عليكم. باشیم آدی. سلام عليكم. بفرم. بفرم. سفاح بودیم. باشیم آدی. بفرم. سلام عليكم. بفرم. باشیم آدی. بفرم. بفرم. باشیم آدی. سلام عليكم. بفرم. باشیم آدی. سفاح بودیم. آجاس کر کن. بفرمین. بفرمین. بفرمین مچه. بفرمین. بفرمین. بفرمین اون طرف. بفرمید این وقانون ها پیاد اوقت ها تو بگیره تا قضا بگیره بفن هجام نوش چیونه دون باشیم بفن بفن نوش باشی داشته باشی رسیدیم آره آه. رسیدیم همینجاست داریم سلام آقای خوشه سلام عزیزم گلگونی شما متشکرم آره بیگی بشین بشین من الان برگردم سلام از در آقا جونم چه به موقع اومدی می‌خواستم بیام پیشت چی تو شده خدا شکر منو تز بگیری البته چه بشین شیش برام به خیلی فشاره دا میگیرم شکسته شده؟ نه آقا، این بابا درستشی که سیست و حالی گردن این مرد شده اوه، گشت نمه هندت گشت نمه، گشت نمه، سیرونیان نمه بالا برد این روانش پرخورترش کرده حمی که می‌بینی این بابا روزی 6 بار قضا می‌کرد. هر می‌دون که ما جوابم ولی من است باقی عمرش هم با خودشه. اصلا بهش نمی‌آد 6 بار قضا بخوره. این نه, نه قلون می‌مونه. آره بعد 6 سال قرار بود امروز آزاد بشه بره. الزوغا از آزاد شدن و شاخ به شاخ یکی دیگه خوردن به هم. این بابایز بالا پلاط پف شد از پایینو دستبالی شکست. منم بنا در دستوری دکتر رسوندنش به یه بیمارستان دیگه. اون‌ادام دستش وارش گاز گرفت. دادامش دا داره؟ آره بندی خدا، چی چیکمش که معیوب نیست، سالمه، چیزیش نیست، دست و بالشی کسی من گوش نمیست هستن حاج آقا، تمامی اسمانو که بگرد یا کسی پیدا نیمیشه چی کمی پرش بود دوار دوار بیام بعد دوار میبینم باشه آه. حالا هرچی چی دلت بخواد چیکمت و پرش بود باشه، گوش نمیست بفرم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 э, ну, в باشه Пореш, значит, порешим, как её rahat بشе. Ага. Агай хошгел, нават мен бу. Не фардам, эсто чё чёпем яс ходам. 1 к 1, 1 к چی داشتیم؟ یه سلطانیو و پشت برد. دو با فقط یه توفمو. همین. بفرماییم. خود بری کهت بده. اه. این که نمیشه تاج آقا. هیت کبتکو بخوری فشارت بالا پای میره. اه? بابا یکی وزا پا دخل. ما. دو بان. بله. بیجا. بله. مم. بفنیم بالاست آج آقا خیلی هم بالاست نوزه رو نو باید تحریز کنی یا مدتی دفی حالا حوله نخو باشه من که میگم آ از خوش اومدنه جعفر است ممکنه 20 سال میشه جعفر رو ندیدن بله میدونم مادرش عچقانو ما. که پارتال مرد خدا بیاموزر من نداشتم به گوشش برسته دار خف چرا یه وقت سکته میکنم گفتم بچم با حول میکنه در چی میکنه میان حالا یه وقت نقافه نفهمه امرو بعد از دور خودم تنهایی میرم پیش با آه. تو را کم کم آمادش میکنم اولش نمیگم مرده اولش نمیگم مرده خیر مقدم ارزم آقای جفر چلوی. تو این تایاری که نشست نداریم؟ فربوده نسبشون آقای جفر چلوی. بله، بله. تولیست مسافری این پرس بوده؟ بله، بله، اجازه بدین الان پیش پشت آقای جفر چلوی، لطفاً به اطلاع. کنید از دیدنتون خیلی خوشحالی. لطفاً یک لحظه. لاحیش جاوِه؟ شما بمیخونه خونه. مقامات دولتی برای تشریفات و استقبال رسمی منتظرند. ما از فرودگاه آزم هتل هستیم. هتل چه پسه؟ همه فکفامه جمع خرج دادیم. در همسایه‌ها میان دیدنت. با اونو فردا وعده بذار. من میهمان رسمی دولت شما هستم. برنامه به طور کامل از قبل پیش بینی شده. در صورت تمایل می تونید سردو تلفن بکنید به هتل. تلفن کنم؟ بله تلفن کنم من فعلا گرفتارم. خدا حافظ فقط ببین من آماده میشم برای تماشای تماشاچی. چی میاره؟ بایدن ای اون حرومش نکن باشید داره بعد جفر خانتا شیفنه ای بردن چرا چرا اومده ایست اما امروز نمیاز کنه مستنده بیارش تو که اون بدن. آره. سلام حاجابا. سلام. حاجابا سلام. سلام. آخ، جیان. آخ، بابا؟ آره، قربونی شکلی دارم. اینا رو دایی جعفره دورده. خوش شدم. آمان، ببین دایی جیان چقدر قصف برام آورده. پس تا دا جعفرم که؟ یعنی بردنده شده یعنی چی؟ کی بردش؟ های. یکی از طرف دولت اومده بود دنبالش خب این که گسته ندارید. شما باید خوشحال باشین که داده جفترم اینقدر مهم شد که دولتی یا میان دنبالش نه گستم از این نیست درم از جای دیگه می سوزد چی شد است جون؟ شما رو به خود راست به من بگویید چیزی نشدهست فقط جعفری عوض شدهست این اون جعفری نیست که من فرستادمش فرنگ آخ. یعنی بلایی سری پسر اومده؟ نه فقط زیادی فرنگی شده است. اما من درستش میکنم تو قمت نباشه حالا جواب فاملو چی میدهیم که شب میان دیدنش یه کاریش میکنیم برای خورده شیر میبه جور کنم با خاندهی ببرم دیوونه خونه باشه دقاچون این آخری یه از همه چی خشم خدا آدمو میگیره اما کی منو پیشه دده جعفرم میبرین دلم براش یه ذره شده فردا میرم هتل ببینم چیکار میتونم بکنم مامان اینو مامان نگاه کن دی جعفرم چه آدم مهمی که دستنگی بهم اولده حی آقای مهندس جعفری چلوی کجا دارن؟ آیا تو محبته باشن خیلی باما خواهیش می جعفر جعفر خوشد می آد ما آقایشم خیلی خوشد چیه شما بودی؟ جه پیش از آی پیش از مسافه. ساعت چه شروع میشه؟ ساعت دو. این چه اسکالیگی کمتر کنی؟ مردم که تو ساعت دو آغاز دن گیده لقشم میگرند. قق مورخ جامعه شناس یابندهٔ حلقه مفقوده داروین مبتکر های فضایی و عضو آکادمی بین المللی فضا پژوهان پروفسور چلویی در سخنرانی امروز نظرات خود را درباره انرژی و احداث دهکدی شبه فضایی نیوجف بیان داشته و سپس پاسخگوی ارباب جراید و واسائل ارتباط جمعی خواهند بود آقای پروفسور چلوئی <تصفح> <تصفح> <بده، جب> <تصفح> <تصفح> سلام هم سیاره ها آدم زمینی های امروز میمون های دیروز خوش فرزان فردا نافرزانگان فرزانگان خیر نپندارید خیلی بسیار زیاد حمد کرده اید در بریدن دم و پریدن پایین از درخت و کوتاه کردن دو پا از چهار پایتان و تغییر اسم پای کوتاه شده از پا به دست دستی که سرانجام ابزار ساخت ابزاری که بتواند زندگی ای به وجود آورد از گل و گیاه و سنگ و پولاد و ذره را شکاف خوشدلان نابخرد، خوابزدگان با چشم باز خوابیده هرچه منبع حیات در این چند هزار ساله بود بیهوده مصرف کردید بدون اینکه بتوانید از این همه انرژی مصرف شده سود شایستهی به دست آورید بیتعارف باید اقرار کنید که از یک میلیون سال قبل تا قریب به این دو هزار سال اخیر قفلت کرده اید آن چند مختره و کاشف نامور و نادر نابغه هم در فرهنگ آینده، عقب افتاده ذهنی هستند آنها فقط توانستند از امکانات ساده و ناچیز و کمتر از اندک مغز پیچیده و تهنابر خود به گیرند هم سیاره ها، انهدام جهان فرداست بترسید از انفجار کره زمین به تنگ آمده از این گردوی پوسیده بگریزید قبل از اینکه دیر شود. قبل از اینکه فرصت از دست برود سوال خورشید کی خاموش می شود؟ ام؟ ام؟ جواب روشن از فردا بله فردا فردا زمستان سختی در پیش است سرما و تاریکی ای گله یخ زده در سرد خانه بر زمین دلگرم باش که درمان آمده پیش از آن که کره ما یخ گردی باشد در لیوان هوا راه سپار کیهان باشید توجه کنید گرچه هر آزمایشی اقدام به عملیات ضربتی را به تاخیر میاندازد ولی برای اثبات عینی این فرضیه مستند طرح دهگدین یوجی در بوته آزمایش قرار میگیرد در این من از افرادی استفاده خواهم کرد که پیشینه تخصصی نداشته باشند و این یک مسابقه است و در این مسابقه دوی فضا به هر سرعتی که بدوی کند است سرعت نور کم شتاب است حالا که انسان من انسانی است جهشی پرشی بیگذر از این روند کلاسیک به طور جهشی با یک پرش از آقا سر به پرجام می‌آورد اگر این هر زیده با سپاس از جناب آقای پروفسور چلوئی میپردازیم به طرح سوالات سرکار خانم ماه منظر خوشحرام به نمایندگی از طرف عموم خبرنگاران تشریف میبرم خوش تریبون تا سوالاتی رو کمکاران محترم مطرح میفرمایند قرائت نمویند اندیشمند محترم جناب آقای پروفسور چلوئی بسیار خوشبختم که این فرصت به من داده شد سوالات خبرنگاران رو مطرح کنم در این مم. فرصت کوتاه سوالات زیادی از طرف شما در مورد مطالعهش تا کارش تمام شد از... بندازیم تا با هم توپ ببریمه جفراوا ای سرزمین های سبز و خرم آماده باشید تا با تکنولوژی جدید خاصین نوین را واگذار کنیم در چه چشمه پوش بزرو نواس میفرستادن فرنج اگه مردم با این لباسی عجق بجق ببیننده شا آبرمون میره میگن این کیچیه تنش کرده است آبروی زید شما تا درشون نیاره نمیذارم بری جلو مردم. هم. من آقاشم میگم ایو هنناس تا جعفر سر نیاد؟ نمیذارم که جعفر بکنم من چشم آب نمیخورد این جعفر خانی از فرنگ برگشته چیزی بشه گشنگی نخورد تا عاشقی از یادش بره زیار کرده میکنم. انقدر نچست منون و حیوانو به سر و سینت نجایت فل <تصال> کاروت برای من عزیزترین موجود دنیاست دایی من و کاروت به هم عادت کردیم کاروت رو سینه من میخوابه با صدای قلب من الفت میان و سگ و انسان پیشینه هزار ساله داره شاید صد هزار ساله تحقیقات سگشناسان بین مللی ثابت کرده که سگ اولین حیوانیه که در کنار انسان قرار داشته. آه. رابطه ای انسان و سگ یا سگ و انسان در فرهنگ یک رابطه خاصه ولی در اینجا رابطه ای انسان و سگ تفاوت‌های بسیار زیاد طرفانی داره. میگم من به شدت نگرانم. نگران خودم تا بیشتر نگران کروت آجاقا خیال داره چه بلایی سر ما بیاره مخصوصا سر کروت عشقی جور عد نداره دت رو جعفر من بلند کنه. <تصفيق> حالا یه چای های میچسبه. می جفه من آقاتم بچه پروفوسورم چه باشد تربیت میخواد عدب میخواد آقات عدبت میکنه با آقات سرسختی نکن آقات بد جون سختی ها حریف آقایت نیمیشه یا هم به پول دادم اونم نه پول بادا برده نه از عرص میراس آقام چوپون بودم شدم گلدار دمیدو کل چلویم از پادایی شروع کردم یه بچه گدا بودم او خود بیا بیامور مجمع رو با هفت از چلو کباب میزش رو سرم با سرپوش مسی رگ گردنم زیر باره چلوها این گنجیش میزد اما مثل قرقی بودم برگشتن بازار بلند و تا دم مغازه که سینی بعدی اون یکی شایده نبره تا مزی نداشت مزمون همون انعام سن و سشه مشتری ها بود این قرقیت چهار سو کچکه می دویدم چهار بزرگه شبام همونجا جا در دکون میخوابیدم. خوابیدم نخواب را یه چرت سر پا آفتاب نزده دکونش آرونی کردم تو زمستون سخت اون وقتا یه روز از زیر کار در نرفتم شبا میترسیدم یخ بزنم خواب. یه جل میگیدم که علم کنجه دیوار، خودمو رو میپیچیدم میلرزیدم تا سفیده ی صوف. اما تو رخت خواب گرم و نرم حالا کیفش بیشتره وقت خواب پا چیزه و یه گلاب بیده من این جعفر آباد به عشق تو خریدم اقل که خودم داشتم گفتم علمشم جعفرخان خان میارد میرسیم به این مردم بردبخت برد. یه دوتا خودو بیام مرز مشری پشترون میشرفیم ولی من ترجیح میدم به ای روشن کشم بدوزم تا برا نیای راه فرار از جعفر آباد نداریم کدوم راه؟ سپردم پاتو از دره باغ بذری بیرون با چوب و چوم ها خدمتت درسن چرا زور ب زندگی در اینجا آداب داره. با کفش نمیشه اومد رو فرش. تو خونه باد پیجامه پوشید. غذام سر سفره میخورین. رختخوابم میذاریم کف زمین. من ترجیح میدم با کارات باشم تا با شما. برین لا هم گور پدر تو اون سگ نجست. معلومه چه میرم. لایقت تو همون سگه. تو مثل آدم لباس نپوشید تو اتاق راد نمیدم. حالا که با من سر جنگ و ستیز داریم من هم جلو شما میستم. حالا که لباسم عوض کردم دیگه چی میجینی؟ کیک منو کوشی داری میذا؟ داری خاک مادر من از قضیه سو خوشم نمیاد. جای آخرت همین جا. یای فاطمه تو بخون سبوط بشی. من فاطمه بلد نیستم. تو چی بلدی؟ خانون جفر ومدس دیدنه ای مادر عزیزم چگونه مرا تنها گذاشتی و با آسمانها پرواز کردی من با فضاپیما به دیدار تو خواهم آمد بدرود تا آن زمان خوش که مردی و ندیدی اینقدرام که شما فکر میکنین حالش بد نیست خب سالا فرنگ بودست و یه خورده اخلاقی اونا رو گرفتیست چی میگویی دخترم؟ اگه نون گندم نخورده دست مردم که دیده ایم همه دنیا بچه هاشون فرستادن فرنگ او آدم حسابی برگشتن؟ خیلی هم هزار کاره شدند و همونجا موندند چرا مال ما باید مثل اونا بشه؟ یه مدتی که اینجا بمونه خوب میشه خیاله میکنم به این زودی آدم بشه سیماش خی یواش بابا جون دارید میاد به دقیقه میاد ایفیشون در رو باز کن جانم تفاس کن در دیگه جانم درک وازست دادم؟ اینجا همه چیز آلوده است دادا اونجا که هوله بود؟ در دنیای جدید که با هوله دست پاک میکنه بعد از کاغذ بهداشتی استفادی کرد و یا دستگاه برقی درها باید همه اتوماتیک باشن ارکیتکچر، غلط، فرنیچر، از اون غلط در همه چیز اینجا خرابه دروژانو موقع شمابالی دادا بشین برات یه چای بده. چایی چی میخوره؟ باید کافی خود جانم اون در باز کن برم بقیه رو ببینم باید یه طرف جدیدی برای اینجا بدم بابا بازر دایی جین چقدر خوب اده آدم آهی نیاره در میاره چه پسری نصیبی ما شده است نمیدونم چیکار چی کار کنم گفتم جعفر بردم چفرآباد حالا همه میخوام میخوان بیان اونجا دیدنش نمیشد یه جوری عقب بندازین قرارمدارشونو گذاشتم پس چی کار میکنین نمیدونم هر کاری بکنن نمیذارم جعفر جلوشون آفتابی بشه از رای رسید اول سراغ هچ کنم رو گرفت یواش یواش آروم آروم آمادش کردیم تا بردیم سری خواهد چقدر گریه کرد؟ چقدر تو سره یه چند روزیه مصیبت پیره والا دلم میخواد جعفر دل بنشاد با همه شما رو برو بشه بگی مغز فلس دیر فرده احلا خدا از حجی نگذره میمیرم میرم الهی بچم توی یفته شده از بوسوسه خون بخون او حکم بهتره یه یکم خونت فیشه این حکم رسمی از طرف دولته بعد از اینکه تصدی سه تا وزارت خونه رو قبول نکردم خواستار تصدی شغل بخشداری دیکد ده نیو جاب شدم برای صدور هوک تشریفاتی لازم بود این. و امکان داشت پدرم تو این مدرد با حوجن جان رعی مقامات دولتی رو بزنه ولی حالا دیگه خیالم راحته مشتمه و پدرم خلق سلام الحمدلله که تو این فامیلی کاسب کار جعفر خان ادار جا کجا شده ریستایی جون؟ محلی که برای ده نمونه انتخاب کردم همین جعفر آباده و تو باید به من کمک کنی تو باید محافظ و مشاور مخصوص من باشی تو پاره جگر منی همون شازه پسری پرسری 20 سال پی پست و با خود جون بگیری قربون اون قدت بگم دهکده ی نمونه ی. نیوجف تو دنیا قوغا به میکنه به همین علتم دشمنان من مانع ایجاد این طرح سوپر مدرن‌ها اینجاست که وظیفه ای تو به عنوان معاون بخشداری نیو جف اهمیت خاصی پیدا میکنه هدف آموزشی آموزش کشاورزی فضاییه مثل همیشه حرفات سیرین و باملدن حسن معابنت رو قبول میکنی دوست ندارم کاری اداری بکنم این دیگه نشد به عنوان اولین اقدام باید بری تابلو بخشداری رو نصب کنی چی تو بگی دایی جون تفاقه باید منم هم عجیزم، مرحبه دیگو چش؟ الحمدلله این مهمونی هم به خیر و خوشی بذاشت بله، بگم عجیزم، بگم جفر آقا بیادش پانک؟ آخه، نه خوبیت ندارد جفر آقا زیاد اون بالا بمونه دا؟ جفر عوض شده آه. است، بله. آقل شده است آه. اما نباید زیادی بشش رو بدم هجآغا خیلی مواظب باشین دا برگردد سریجا اولش کار میدهد دستمون <تصفيق> رفه؟ بله آقا جان بیا چشم خاندومات بله. حض کن ام. این طوری بچه رو آدم می کن ده حالا یه چایی بریز بینم چون چشم این کار سخت چایی دواست درسته رفع آتش می کن حق با شما بفرمی امر بفرمی اومدیش ها اومده بودن دیدنه. وعده کردم شبیش جمعه صحبت هر بود با دختره آمود بعد از مرگ خانده داشت تو برام ندارین هر دوتون اولادمین گویا صحبت از ازدواجه و شما برای همسری من دختر امومو کاندید کردید درسته وقت دست که اون چی؟ قافلید آقا جان دیگه دوران تبعید من تموم شد دیگه مجبور نیستم رفتار مفتزل شما رو تحمل کنم دستور دولت مبتنی بر تحسیس بخشداری نیوجف به من ابلاغ شد و من قانونم بخشدار نیوجفم و اما درباره زن زنی که شما میخواهید برای من بگیرید باید بگویم که سال هاست که من ازدواج کردم و این عکس همسر آمریکایی من کم با فرزند بزودی به زودی بعد از تصویت موقعیت من به ایران تو زن سری بی خوه اونام زنه فرنگی یک چلو با آقا دلم زن زنه ناموسرمون اجدبی بی غیرت زن آمریکایی، بی اجازه ی آقا تو خودت دون خور من بودی پسر اهم طالب از کدوم طرف؟ سری سرا که رسیدی؟ دستی چپ من که رانندگی بلدم راه و بلد نیستم تو که راه و میدونی رانندگی نمیدونی سری هم میشیم کامه چیزی کم نداریم اصلی موضوعی رفاقتی ما میتونه تمین باشه فند از شما ترفند از من ببینم کدوم بیمارستانو براش در نظر گرفتیم؟ این دیچار دیگه کارش از هرچی م دووا گذاشته باید فکری مجسی فاتاس سفاار سنگ قبرش باشی حالا از اینا گذشته خواند بیمارستانی بیمارستان این ها کجاست؟ میترسم کار از کار بگذره و کار دستمون بده حالش این خوب نیست ای بابا شما دارین اشتباه میکنین جعفر با به صلاح دون نیست ببرینش بیمارستان نه نه این از انسانیت به دوره باید به سرعت بررسون به بیمارستان مجهه هست باشه اون پدر منه. میگم چی طورست ببریمش جایی که دستی قوم خیش بهش نرسه اینجوری شما راحتر میتونید به برنامه نیو جفت برسیم فکر بسیار خوبی است. با شما موافقم راه نمایی باشه نه دکتره می میپردازیم به معاینه حلق و گوشو بینی خب آماده بشیم چی هاج اکبر آقا وای چه بلایی به سرش اومده یعنی چی بنده خدا سکته کرده است اردندش بخش روانی عجب بلبشویی آ ای رئیس مریضی که آوردن اینجا روانی نیست آقا سکته مغزی کرده است باید به یه بیمارستانی مجهز منتقل بشه ببینم شما مطمئنی رفیق خودمه بله راست میگی؟ ولی من اطلاع نداشتم حالا برای اینکه روشن بشه کیونه آورده ایشون باید اینجا بمونه همینجا که بایی این دیوانه ها بشه به مسئولیتی خودم میبرنش یه بیمارستانی خوب که اینجا؟ آقای خوشدل چرا خوشدل؟ آخه بیچاره رو برده بودن بیمارستان روانی عجیبه اونجا چرا؟ شاید همون نزدیکی حالش به هم خورده بوده هیچ کدام ازبستگانش نایمدن به دیدانش؟ آقای خوشدل رفت بهشون خبر بده قضا فعلا بهش نمیدین فقط سر گلو خوز روزی سه مرتبم علایمی حیاتیشو کنترول میکنید فکر کنم های جان اومدن پسرش کار دستش داده حسی اگه پسرش اومد منو خبر کنید دلم میخواد ببینمش شما <تصفيق> شما این بابیتنا اتاق رو یادت نیسین دیگه هم کاران همه مقامات مسئول از این که من شما را که دارای هیچ پیشینه‌ای کشاورزی نیستید برای همکاری انتخاب کردم دوچار سرفریز شدم ولی مطمئنم که شما همکاران خوبی برای اجرای ترهای من خواهید بود و من نیازی ندارم برای آموزش شما دانسته های قبلی را از ذهنتون پاک کنم تنها خاندایی عزیز در این پروژه استثنایی به عنوان معاون و دستیار با من همکاری خواهد نمید و دستوراتش. که مسلمن از طرف من صادر شدی برای یکایی که شما لازمون اجراست من از شما میخواهم کلیه دستورات صادره را بدون چون چرا عمل کنید تا بتوانیم به تمام جهانیان ثابت کنیم در این گوشه دور افتاده هم میشود پروژه های پیشرفته را اجرا کرد. هر نوع سآل و کنجکاوی که زایده منطقهای های معمولیست سبب کندی کار ما خواهد شد هدف ما ساختن حمام و مدرسه و بیمارستان نیست آرمان ما تشکیل یک جامعه فوق پیشرفته است تا جامعه نیوجیف الگویی باشد برای تمامی جهانیان از همکنون آیندگان کلاه خود را به احترام شما پیش کامان علم و عمل سر بر به نام حرکت شما بر سردر ایسکه های فضایی خواهد درخشید ازدار ماشاء الله جگل حوزی پیدا از این به بعد بردن نام جعفر جعفری جعفر چلویی و جعفرخان برای عموم اهالی دهکده نیوجف ممنوع است و اهالی دهکده میتوانند بخشدار مهربان خود را پرفسر فضا صدا کنند برای شروع کار شما رو با ماشین آلات کشاورزی مدرن آشنا خواهیم کرد فرصت <سرح> آموزش با این ماشینالا خیلی بسیار زیاد از طرفی این وسائل به ظاهر پیش که در دیدگاه ما قرار می گیرند به و تسریع در امر تولید عبزارهای و وسایل پیش ما در سطح تکنولوژی مدر مطلقا خارج از رده محسوب می شوند نقط نظر ما در این مورد فقط از نظر ابزار شناسی است بنابراین ما به اندازه یک تماشاگر مراسم رژه وقت میگذاریم برای تماشا این بزرگ کاررنبا؟ هر هم چه بلای سری بابای بیچاره اومده است. سکته مغزی خانم میشه. حالش خوب میشه. خدایی خود رو که تا خوابش سلام آقای دکتر. دستم به تو یه جون نجاتش میبیند. خودتون ناراحت ناراحت نکنید. خطر جسته. تنهایی کجا بوده که ازش خبر نداشتید؟ بعد جفر و خانده رفته بودن جفر آباد بعدا آقامون گفت بابا کار داشته تنهایی برگشته شهر حالا اونا کجا هستن؟ داده جفر و ای تو جفر آباد دنبال کارای خودش بودن آقامونم دست تنها مونده سر چلویی؟ چی؟ آقا خاند خاندو ماد چی؟ لوه آره تو خون ها چرا یا با جعفر با جعفر تو خون نری آ ها یا شما رو شماره شماره بردن چه خب، بعد از آشنایی با ماشینالا در ابزار کشاورزی امروز باید آماده برای کشاورزی در فضا بشدیم و برای این کار لازم خودمونه در فضا احساس کنیم هم سیاره های عزیز اکنون که همه چیز برای شروع فعالیت گروه ما در فضا آماده شده از برنامه پیشرفته خود فیلم تهگه خواهیم کرد تا مقامات مسئول و جهانیان در جریان فعالیت های فوق مدرن ما قرار بگیرند. من بلد نیستم فیلم برداری کنم خب اونام بلد نیستن که تو فقط شعی کن از تو دوربین اونا رو ببینی و بعد من که گفتم کمیرا کلیدو بزن من دوست ندارم فیلم برداری کنم یک دیگه بیاد فیلم برداری کنه من میخوام با رو میکنیم نمیخوام. حاضر اکشن بازمینیان به اینجا ایم تا با ساختن خانه های جنینی زندگی نوینی را در این کره آزمانی آغاز کنیم خود درمانی در قضا امتحان زربان قهر کشیدن دندان گیری حرارت بدن از روی لباس همینطور گیری فشار خون و از همه مهمتر انجام عمل بیهوشی توسط بیمار روی خودش به طوری که پس از شمردن ده شماره بیمار در عین بیهوشی سرحال و شادا پاهده بیش از اندازه داروم مصرف کرده البته بنده پروژه دارم تا افراد ضمن دیوشی کامل آنقدر هوشیار باشند که بتوانند شخصاً عملهای جراحی از قبیل آپاندیسید و لوزه و نظاهر آنها را روی خودشون انجام بدن در پروژه های جهشی پرشی بعدی دیمار قادر خواهد بود عملهای مشکل تری نظیر پیوند قلب و کلیه و سایر اعضا را روی خود انجام بدهد ولی این وظیفه دانشمندان است که چیزهای غیر ممکن را ممکن سازند در قسمت بعدی برای شما نشان خواهم داد که این پاک مغزان چگونه زبان انگلیسی را فرا گرفتند تا در صورت برخورد با سایر ملل در فضا بتوانند با زبان بین المللی با آنها صحبت کنند لطفاً نمایش بدید آه ای, آه ای, آه ای, آه آی آی آی ایزی ایزی داز مای ریزر هردیو؟ یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه چنچو مستر Fish and the chips? I would like two eggs and a big hamburger. <laughs> <laughs> Shall we go dancing tonight? I can't dance. Your dancing is super. Thank you very much, Mr. Saad Super. Very tasty. های ام سی او اینگ، های ام هلا ماشوسه هلا مستر قلومی این در این کالیج گیم گایینگ آن می نیم ایز مستر اوز نسیر تایلر در کار علمی آینده اصل اول است Attention, please. اگر بشر در فضا با موجوداتی از کرات دیگر برخورد کند چگونه میتواند با آنها ارتباط برقرار کند؟ آیا زبان آنها را میشناسد؟ خیر؟ آیا آنها متوجه اشارات ما میشوند؟ به احتمال زیاد باز هم خیر. پس چه باید کرد؟ باید از زبان موسیقی استفاده کرد موسیقی؟ بله موسیقی من این پاک مغزان را با این اصوات فلکی آشنا کرده هم لطفاً نمایش بدین جعبه خانده خانده خاند آمد اینجا چی کار میکنی؟ سنب. سلام گابمون زایده است. چطور؟ من از خونه با چلو کبابی بیرون کردن بیرون کردن؟ حذیب به حرف میده همه چیز رو گفته است بالاخره حاجاغا زهرش به ما ریخت این میتونه مقدمه توتعی باشه برای ما نیوجفی ها این توتعی شمانا جوانمردانه مقامات رو نسبت به ما بدین کرده باستش حذی میخواد شمارم از جفر باد بیرون میکنه اون خیال میکنه من بیدی نیستم که از این ها بلرزم اما من ترهای دارم که هیچ کس جرعت مخالفت با اونها رو نداره تو هم اصلاً نباید از آینده بی می داشته باشی من شخصا از تو حمایت خواهم کرد. تو داد؟ آقا جون شما رو به خدا خودتون رو ناراحت نکنید. دکتر میگه عصبانیت براتون زهر است. خدا رو شکر کنین که از خطر جستین اگه بدونین گرلو چقدر بونه شما رو میگیرد یه دقیق نیست که حرف شما از دهنش بیاخته حالش خوبست بله گذاشتمش پلو بدری خب دیگه، بسته خستش نکنه، بیارو تخ بشه دکتر اجازه داده امروز آقای دکتر کجا تشهد تموم شیف شده، نخواستم برم مرده آقای دکتر شریف کجا؟ طبقه بالا خانوم مرسزوی، بخشت بودکان کجا؟ آقای این رو داشتم میمدم خدمت شما مشکلی پیش نه فقط میخواستم اگه اجازه بده این بابا رو ببرم خونه بابا را کس دیگه قراره ببرد کی آقای دکتر؟ دوست, دوست قدیمیشون آقای خوشت. چرا این شو؟ به نظری من مشکلی پدری شما بیشتر ربارد ضربه که از جعفر خوردست هیچ جور نمیتوند فراموش اگه در محیطی باشد که بتوند این مسئله را زیاد ببرد در بهبودی حالش خیلی مست. من تو خونه سعی می کنم این کارو براش بکنم. شما با اون خونه زنده کننده خاطراتی جعفر برای اون هست. اما خوشدل میتونه دنیای اونو عوض کنه. میدونید که خوشدل آدمی شوخ و بسگفتوری است. از طرفی با مسائل پزشکی و روانی هم تا اندازه آشناست. البته شرطش اینه که شما موافق باشید. هر شما صلاح بدونید. میموند موافقت پدرید. آقای خوشدل قبول کردن هم چه زحمتی رو به عهده بگیرن؟ من وقتی بهش گفتم کلی خوشحال شد قضادون چطوره؟ حاضر این روزها با خوشدل بریم گردش؟ فردا صبح میاد دنباله دونید انشالله به هر دوتون خوش بگذره. خدا بزارد. به سلامت. 2 nee, 4 <Gülüyor> <Sessiz> <goal> <Substance> <gülüyor> اخه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها به مرحمت شما حالش خوبست دکتر جون اما نمیدونم ها هر ترفندی که بهش میزنم فکر جعفری بیرون نمیاد اصلا نیست اینکه که بیماری جعفرهک گرفته است خب میگین حالا چیکارش بکنی؟ میکنی؟ دکتر جون ببینین شما سعب اختیارین دستور بدین ما هم عمل میکنیم بیتره برش گردونین به اتاقش توی بیمارستان منم امشب خودم میرم دیدن جعفر یه جوری بلکه اون آمادش بکنم که بیاد بیمارستان و این کدورتو از دل باباش در بیاره دیگه بهتر زید نمیشه دکتر جون خب ایشانلا در همه خواهدو موفق باشیم میدونی شری من در فرنگ مرتب یاد تو بودم هر وقت تو فیلم ها کلوتر میدیدم میگفتم شریف فرند قدیمی من اما من هر وقت از کوچه های قدیمی رد میشم و مدرسه رو که با هم می رفتیم می بینم خاطرات شیرین اون دوران برام زنده می شن چقدر سمتی منتالی و کهنه فکر می کنی گذشته ها رو بریز دور و به آینده فکر کرد. برای ساختن آینده باید گذشته و حال رو بشناسیم. تو خلع نمیشه شد پرید شیری جان تو از تکنولوژی جدید دور افتادی جانم من همش سه ساله که اومدم غیر اون از طریق کتاب و مجلات در جریان مسائل علمی هستم. در دنیای امروز مسئله یک می ثانیه است اون وقت تو از سال حرف میزنید؟ خب، حالا تعریف کن ببینم کجاها بوده چی خونده جایی از امریکا نیست که یک تریپی با اون نکرده باشم از لاس وگاس گرفته تا سان فرانسیسکو و باشنک دی سی و از نیویورک بگیر تا میامبیچ و تا چی که تا ترای نکرده باشی نمیتونی درک کنی، چی میگم؟ اصلاً فرصت درس خوندن پیدا کردی؟ کار باید با تو هم باشه جانم من رشته های رو انتخاب میکردم که احتیاج به ریسچ یعنی تحقیق داشته باشن تا اینطوری بهتر بتونم این طرف برم. تو رشته ای تخصص گرفت؟ کشاورزی فضایی و برنامه ریزی و متدولوژی، و فرمالوژی و پیسیکولوژی و چند رشته دیگر حالا سه هرچی لوژی بوده شما تخصص گرفته البته در رشته های سینما با تیاتر و موسیقی هم کار کردم در درواز رشته محبت رو از یاد برده تو نمیفهمم آخه چطور رازی شده پدر سکته کرده دو ببری بیمارستان روانی بعدم اصلا سراغش نگیری که یا مرده. آیا کاری بزرگتر از حفظ جونی پدر هست؟ پروژه های من خیلی بسیار فراوان بزرگتر از آن است که مغزهای کوچک قادر به درک آن باشند. در پروژه های بزرگ راهگشای بشریت در آینده است، جان یک انسان چه ارزشی دارد؟ جفر برای اینکه پدرت نجات پیدا کنید لازم یک سری به بیمارستان بزنی و ناراحتیارا از دلش در بیاری. من برنامه‌هام زمان بندی شده است، حتی یک ثانیه وقت اضافی ندارم. تو واقعا دروغای خودتا باور کرده ای مرد حسابی منم تو همون مملکتی درس خوندم که تو خونده برای خوندن و گذروندن این همه رشته و تخصص که تو اسم میبری بیشتر از صد سال وقت لازمه تو مسائل جهشی پریشی رو نمیدونی جنم به تو زیادی پریدی جهفر اونقدر که از مرحله پد شده وقتی آدمهای های مثلا تحصیل کرده ای مثل تو نتونن منو درک کنن از دیگران چه توقعی میشه داشت اشتباه نکن جفر خان. این مردم با همه سادگیشون فرقی بین دوغ و دوشاب رو خوب میتونن من دیگه حاضر نیستم با تو بحث کنم بیش از اندازه وقتمو گرفت. خدا حافظ فرخان. باشد برای پروژه‌های های خیالیت. جولورنم با تخیلاتش دنیا رو جلو برد چی بگو آقای دکتر اما اگه لازم است من برم یه جوری بیارمش نه همون بهتر که نیومد. چون اگه اومده بود بابا سکته دومم زده بود اول باید هر طور شده جعفر رو یک روان پزشک ببیندش یعنی اینقدر حالش بده اگه بابا یه سکته ناقصه مغزی کرده اون دو چاره یه تعطیلی مغزی کامله پس چی کار کنیم آقای دکتر؟ اول باید باباره نجات بدیم و بعدم یه فکری به حال جعفر میکنیم. کنیم آچایی دون سر جد پدر جز با جعفر با چه کسایی اختلاف داره و یا از اونا ناراحت است والله تا اونجایی که من میدونم غیر از جعفر فقط از دست خاندومات خیلی ناراحت است چه کسی رو بیشتر از همه دوست می دارند. دخترم گلنوش پس چرا هیچوقت بیمارستان نمیار آخه می ترسم بابا رو تو این حال ببینه تو روحیش اثری بعد بد بچه بچا خیلی زود به همه چیز عادت می کنم. کاری که ما باس بکنیم اینه که اول از همه از خوشتل خواهش بکنیم بابا رو با خاندومات آشتی بده بعدم بیشتره وقتا اونو با گلنوش تنهاش بگذاریم. یعنی میشد یه روزی این فلجی صورت و بدنش بین بره. گاهی شج، یه شادی غیر منتظره میتونه معجزه بکنه. هج آقا من یه مریض دارم که فقط شما میتونین معالجش میکنین خاندومات آه... بله حالا دست اجازه میخواد بگیرید دستی شما رو بروسد هج آقا ها. اما تا وقتی شما بله زنده نمیخوند ببینیندش؟ ایشالله خوب بیشه بله پس تکیفی چلوی چی میشه شما میبخشیم به دختر دونه فتح بله خاندوم آدم میتوند چلوی رو ادارش بکنه بله شما درآمدی چلویی چلایی رو میخونی خرجی در منگاهی موقوفه بشد ایشالله خاندوم آدم موزشو بەرام قەسە بگو تو دیکە پاپۆ بابا پۆ بابا پۆ مگه من کار پۆ کردم که برام نمیگو <تصفيق> پیو مام مستم اگمه بابا بسیار آقای دکتر خیلی کجا خیلی تو بیمارستان خیلی الان باید خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بکنم خیلی خیلی بابا که تموم شد دوباره بیاین اینجا ببینم خیر ببینیم بابا بفرمیم باشد نفیم با. بفرم. <تصفح> به نفر بعدی بگیم بیان چه اشهای دکتر دکتر شریف بفرماییم آقای دکتر باشته آقا جون گلوشو بخر کرد باش حفظت خدا رو شکر اون خطر فلجی رو از سر گذروند انشالله که جعفرم به خیر بشه مرد افکنه یه وقت تو گودم میچرخیدیم در و دیوار ساکن بود حالا ما نشسته و در و دیوار میچرخه. انسان سرزمین انسانی است مسلح به فرهنگ شفاهی، فرهنگ سینه به سینه کتاب، حافظه رو تمبل و انسان رو منزدی و از هم جدا می سازد بسوزانید این کتاب ها رو و توجه کنید به این نمایش خوربسور، ازنای بچه ها وضعیت میکرام کنند بعد خراب کردن زیمین بازی بچه ها و جنب و جوش و حرکات مشکوکی در میونشون مشاهده میشهد در پاره از محافظ گفته شده به چا شورش دارند دردم خبری تایید نشده ای هستش که در هاتی مجاور علینن گفتن حالا که بزرگتر ایک ما جلوی پروفسور در می آییم yes. من از بچه های این دوره حقیقتا می چون احترام به بزرگتر حالیشون نیست ولی من جلوشون می ایستم کلی خوب شدین و از فردا میتونیم به نیم سر کار یه مدتی حتما باید استراحت عادی دکتر هر چی شما بفرمایید تا شما اجازه نفرمایید نیم زارم خونه بیرون بذارم باید خونه بمونه تا با من نه همه کار بکنید سر پیری کارمون در اومد. خانم هر بعدی خوبی از مودین حلالمون رو ما جس خوبی چی شما ما که میتونیم جبران زحمت های شما رو بکنیم اجرتتون با خود. من که کاری نکردم زحمت رو آقای دکتر کشون که جای خود تا به سلامتی ببخشید یه سوال داشتم درسته که یاد دریختن سر جعفر کتا گیزه منم من هم اینطور شنفتم خدا بهش را هم اینجا ای برگ کجا رفتی؟ دایی تو تب و لرز داری پک پلوت میتشد و میافتی به جونه مالاریام درمان شد با علف از پیش جدیده ای که حکیم بنگالی در دهانم گذاشت لرزم قطع شد و سرا آتش خدایا بچه داره تو تب میسیده، خودت شفاش بده ای آسمان، دانه بیفشان در سرزمین این سر هوشمند تا جهان خرم شود دانشمندان، های کنفرانس را ترک کنید، سر بگذارید به سهرا قلندرانه اه. ای روشن فکران شما از میان این کتاب های بی جان چه میخواهیم؟ هر برگ چنار نوشتهیست هزار مرتبه پر پرمخستر از نامه های پم دنگر چه نوشته؟ من که ندارم داییم میفهمی چه میگویی؟ چه دانشی بالاتر از چشم جهان بیم؟ دنگر بی, بی تردی خواهی فهمی اه. اه. اه. نه نه نه نه من من برگ چنارم برگ چنار چیش سبزی است؟ امشب بی تردید باران خواهد بارید لحظه تحول دنیا با شگفتی انگشت حیرت به دندان میگذد از قضا پروفسور فضا طرح تازه ای مفرح مینماید طرح بازگشت به سنت ها. چرا آن بچه های شورشی خست آزار من را داشتند چون ما با اصل آنها دعوا داشتیم از روزی که بچه ها کتکت گردن حال کردی و هوایی شدی؟ باید همون موقع قاشق نمک میریختم تو هل قومه. امروز شرق شناسان در شرق مسائل تازه یافتند در آمریکا بارها دیدم هر کس سفری به ایران کرد پردقنم کار آورد. آفتا به لگن آورد کوز قلیال دست چپوق، برای چه آوردن که ارزش میراث‌های های فرهنگی و معنبی ما را تعیین کنند رفتن در زورخانه ها عکس گرفتن در زیر پل خاجون لونگ بستند و چال حوض بازی کردند ما باید دنیا را از چشم آن دینایان ببینیم از چشم مستشتق غربی با عینک پیش غربی به شرق میانه که در آنیم بنگریم ای جان حالت خوش نیست بیبریم تو دای بیبریم تو دای بیبریم توی دای بیام, بیام. کجا رفته سین کجا رفته سین دختر من برگ گله محمدی عطره گله محمدی بغل بابا نیومدی کجا بذاشتست رفته سقایم شده سین آه. نکن رفته, پشت. آه. رفته این پشت رفته سوی این لیبان آه. بله رفته تو این لیبان اه، نا اینجا نیستش. اه؟ رفته تو این شیشه قایم شده اون تماها نه انجام نیستش برگه گله محمدی عطر گله محمدی بغل بابا نیومدی شاید رفته باشد این پشت نه رفته تو این جیب جلیقه اون تماها قایم شده نه انجام نیستش ها حالا فهمیدم کجا رفته است رفته اینجا زیر فرش خواهیم شده است گلوش باشو بیا بیدیم خواهی گلونه دکتر برم پسرا بیان قطار قطار بچه تا جراب و با پول و قطار قطار قطار قطار, قطار, قطار. دکتر بیا قطار قطار گلوشو شوا نیره بیخواهی بدیم کولو شو شو آه نیم کم می‌دم، تو کاری من من من می‌کردم دکتر دکلاری می‌کردم، دکتر بلالی می‌کردم، می‌کردم می‌کردم. آه، آبی می‌بینم، مادرش چه کاری دی؟ گل می‌شکنم، کوچکی، گل می‌شکنم، کاشی، گل می‌شکنم، سلام آقا جون. سلام دکترم. چه خبره؟ خبری خوش ندارم. چی شده؟ دوباره خوندم آدم، دست بولم آدم نه آقا جون. از جعفر آباد خبر آوردن که حالی دادا جعفرم بدتر شدست دائم هزیون میگد این بچه تو فرنگ ملاجش عیب پیدا کردست میگن حالی خاندائیم بهتر اون نیست این مرض باجیر دارت تا جعفر بیشتر از این اسباب آب روزی نشده است باید به خاندومات بگی بلیط براش بخرید راهنش اونش کند فرنگ به خاندائیم بگد برگرده سر کارش <تصفيق> مردمی که قدرت تمیز ندارند لیاقت ترقی هم ندارند چرا وقتی میشه به یک سوئدی متمدن سرویستاد یک دانشمند یک دانشمند عمرش و بیهوده به پای یک آسیایی نابخرد تلف کنه خردمندان در جهان فراوانند و خریداران خرد خردمندانند خروج من نشانه فرار تو؟ شو شکرد یه فکری واسه خاندایی بکنی که هنوز برنگشته. نگشته بچه چه گم بشه؟ هر جا باشد پیداش میشه وخیلی واسه گلوشو عوض کن میخوام ببرمش بیرون اخجوم میریم دردش باب بزر آره جون کجا میتاییم بریم میریم بیشه خوشت میخوام بهش بگوام برد درمونگای جفر آباده و راش پندازد راستی خوبه، خیلی هم خوبه خوه درست شد خدای همه مریضا رو شفا بده خدا از بزرگی کمه نکنه دکتر به سلامتونم خوش امدین آجکبرامون برام ببخشین ببخشید. ببخشین که اینقدر محتر شد کار مریضا آجدتر بود شما حتما خیلی خسته، شدیم از بس ورد جوزه کرده خب، در خدمت حاضرم، بفرمید دوشتر میدونین چه آرزو داشتم یه درمونگاه تو جعفر آباد دایر کنم او جعفر بالای سرش باشد جوهرشی نداشت میخوام ادتون خواهش کنم شما زحمتشی بکشین باشد انشالله هر وقت درمونگاه رو انداختیم خبرم کنین یه فکری براش میکنن در منگارات چی میگه جون خودتون همه چی واضهره جز وجود خودشون آبول میکنه. آواز خیر بینید دوست دارم. از آموزش که همچین پسری بوده چری. بابا بذار جو بابا بزرگ میشه منم پرستار بشم؟ چرا نمیشه؟ ایشالا که دکتر میشه؟